حکم رقصیدن و کسانی که رقصیدن دیگران نگاه میکنن رقصیدن گناه هست و حرام هست و همچون نگاه کردنش گناه هست چرا گناه هست؟ این دیگه خود انسان دارای کرامت هست شریعت اسلامی همیشه از کارهایی که باعث رفع حیامیشن میشند. حیا انسان میده زید سوال یه انسان رو صبق میکنن نهی کرده چیزی که باعث یکی از اصولی که ما داریم در خود, رس... در خود رقص نای اومده رقص نای اومده اما در خود چیزی که برای انسان بزرگ خیلی مهم هست مرووط هست کسی بخواد که به سر حدیثی روایت بکنه یه قولی نقل بکنه انسان خوب باشه باید داره مرووط باشه به با کسی گفت میشن داره مرووط هست یعنی کارهایی که خلاف عرف و مردون ها رو بد میدون انجام ندهد پس با رقصیدن که آزا خود را اونجا جلو مردم به نمایش میگذاره اینها گناهند و حرامه از خود این رقصیدن اعمال مشرکین بود مشرکین در نزد الله میرقصند و دوباره نبی کی فرمودند که در قرب قیامت دوباره در بیت ذلخالصه که در یمن هست دوباره خانومها فرمودند که باسن ها رو اونجا دیگه بلرزش در میآورن اورن می میرقصن اونجا یا نکوهش کرده از علامات بد مشکین و اول همچون علامات بد بود و فانو کسانی نزدیک قیامت می آیند ذکر کردند.